توكيد الفعل احكام توكيد الفعل الأمثلة تبقى معمول كتاب با مثال شروعي يكونت وحق قد وحقك وحقق لا لا اخذ من الوطنه لا اخذ من ال... اینجا می بینید که در اخدومانه چه فیلی است؟ نه احسن سیغش ولی فیل مزاره است فیل چه است؟ مزاره است خب اینجا میبینیم که بانون تاکید مؤکد شده است تاکید شده است چه شده است؟ وحقی که لصوف اخدومو سروران در, در شماره دومی می بینیم که تاکید نیست در شماره دومی اخدمو هست و حقی که لسوف اخدمو الوطن می بینید که دگه اخدمو تاکید نیست خو والله لأقومنه بواجبی والله لأقومنه بواجبي مؤكد هست والله لا اقوم الان تالله تالله لا اساذنك تالله لا و و این سه مثال سه گروه از امثله رو آورده است میدونید چرا به این خاطر که اولا این نقطه رو در مورد تأکید بدانید که تأکید بر سر فعل ماضی نمی آید میدونید علتش چی هست به خاطر این که گذشته رفته خیلی من نمیتونیم چیزی که رد شده و روش تأکید کنیم من به موقع میگم حتما این کار رو انجام بده یا حتما این کار رو انجام میدهم این برای چه زمانی میتونه تأکید کنم؟ احسنتون آیا میشه برای ماضی من همین چیز رو تأکید کنم؟ حتما میروم؟ نمیشه دیگه تأکید برای ماضی تأکیدی نداریم یا مزاره یا امر یا مزاره یا امر. دوباره تأکید مزارع بر دو هست یا واجب هست یا جایز هست یا واجب هست یا جایز هست به خاطر این در دو گروه امثله یه جا جوازی رو میاره یه جا وجوبی رو میاره و گروه سوم هم فعل امر رو میاره با تأکید ما دوتا نون نون داریم هر دو تا مال تاکید اند ولی یکی ثقيله است کی خفیفه ثقيله مون تجدید دار هست حالا امثله گروه ب رو دقت بفرمایید ان تتعلم اما اما تسافر تتعلم اما توصافر، تتعلم. لی ترحمن لترحم لی هل توصافرن فی الصیف؟ این گروه بی جوازی هست. یعنی جایز هست در این مثال ها که ما فعل مزاره رو تأکید کنیم مجاز هست که تأکیدش؟ بله. هل تو سافرن فی الصیف حل تو سافرو فی الصیف هر دو حالت جایز است. هر دو حالت چی هست مولا سوهل جو. جائز هست بعدا در قواعد می فرماید به خوبی که چه زمانی چه زمانی واجب هست تأکید فعل و چه زمانی جایز هست فعلا در امثال دقت بفرمایید لا تکثرن نه من الجدال لا تكثر من الجدال از قواعد 33 سی تا هفت، این قواعد رو به خوبی که تا اینجا ما فعل مزاره رو خوندیم که با نون تأکید شده بود در قسمت جین فعل امر صاعدن الفقراء صاعدن الفقراء معنیش میشه یعنی حتما فقرا رو یاری بده همکاری کن با چی نه میشه فعل امر نون نونی چه بله نون تاکید هست فاعل انته مستتر است، محل مرفوع الفقراء همیشه چه؟ مفعول بهی ساید الفقراء اقتصدنا في النفقات میان روی کنید در خرجهایتان، در نفقاتتان، در نفقات، اقتصد فن نفقات، حالا اگر دقتی در قواعد بفرمایید، به خوبی متوجه خواهید شد چه زمانی تأکید واجب هست و چه زمانی جائز هست، پس بیایید روی قاعده اصی و کتاب، الماضی لا یعکد بنون تاکید ماضی که با نون تاکید مؤکد نمی شود پس مازی با نون تاکید مؤکد نمی شود سی و یجب المبارع یجب تاکیده ببینید می فرماید چه زمانی تأکید مضارع واجب است المضارع یجب توکیده اذا کان جوابا لقسمین مضارع واجب است تأکیدش زمانی که جواب چه باشد مانند وحقک سوگند به حق تو لا الوطن که وطن را خدمت خواهم کرد حتی من وطن را خدمت می کنم خب اینجا شما اگر دقت بفرمایید میفرماید المبارع یجب توکیده مضارع واجب از توکیدش اذا کان جوابا لقسمن اون مضارع جواب چی باشد قسم باشد یک هنوز شرطای زیادی مونده عجل نفرمایید غیر مفصول من اللامی، ببینید؟ جواب قسم باشد، ولی فاصله نیامده باشد بین اون و لام، غیر مفصول من اللامی، ای بین فل مزاره و لام نباشد مانند و حق که وطن در این مثال در این مثال چرا در گروه بعدی آورده بود و حقی که لصوف اخدم الوطن اگر صوفه نمی اومد در مثال بعدی هم باید میگفت لأخدمان الوطن بله چرا در مثال بعدی واجب نشده چون بین اللام و اخدم فاصله اومده است اون فاصله چه بله فهمیدید خوب المضارع يجب توكيده اذا كان جوابا لقسم پس جواب قسم باشد یک غیر مفصول من اللام فاصله احسن نباشد مستقبلا مثبتا به معنی مستقبل باشد و مثبت باشد فهمیدید خب حالا به معنی مستقبل باشد نه به معنی حال در گروه دوم دقیق بفرمایید در گروه دوم دقیق بفرمایید والله لأقومن بواجبی آقایون عزیزان من دقیق بفرمایید والله لأقومن بواجبی اینجا واجب هست که با نون شود چرا؟ چون تمام شرایط رو دارد به معنی مستقبل هست لام روش اومده است بین لام و فعل مزارف فاصله‌ای نه آمده است اما در گروه دوم دقت بفرمایید در مثال بعدی والله جروه لا اقوم گروه دوم نه در مثالی که روش هست یعنی همین مثالو به آورده است که تاکید واجب نیست والله لا اقوم بواجبي الان در این مثال چون به معنی آینده نیست واجب نیست آورده گفته والله لا والله لا چرا واجب نیست؟ چون به معنی مستقبل نیست یکی از شرایطش که با تأکید نون فعل مزار واجبی بود همین بود که معنای مستقبل, مستقبل داشته باشد فهمیدیم اللعنس؟ بله که بهت گفته الان آورده به معنی حالش کرده برادر من کلمه الان که اومد به معنی حال میشه خب. اما مثال سوم دقت بفرمایید اما مثال اینجا تأکید چه است؟ بله وجوبی است چون در جواب قسم اومده بین لام و فعل مزاره فاصله نیومده به معنی مستقبل هست مثبت هم هست مثبت هم هست. هست اما در همین مثالو دقت بفرمایید روبروش تالله لا اساعدک که بله چون منفی هست پس اینجا واجب نیست, نیست. پس شما یاد گرفتید بر اساس قاعده سی و چار کتابتون که چه زمانی واجب است مزاره توقید شود؟ سروران یاد گرفتید دیگه ولی مهم اینه که باید بعدا اینو نگه بدارید و حفظ بفرمایید آقای ملا سوحل مهم نیست که این من, من اینو تحویل شما دادم خیلی از شما ممکن است اینو دور بیاندازید مهم است که یک عمر اینو محکم با چنگ و دندان نگه دارید خب بریم جلوتر قاعده 35 کتاب المضارع یجوزو توکیدوهو اذا کانا دقت بفرمایید مزاره جائز از تأکیدش اذا کانا مسبوقن زمانی که مسبوق باشد یعنی قبل از اون آمده باشد مسبوق یعنی اونی که از او سبقت گرفته باشند مسبوق یعنی آن چیزی که از او چه باشند سبقت گرفته باشند شما موقعی که مسابقه میدید اونی که جلوتوره بهش میگن سابق به این چی میگن مسبوق, مسبوق. بله میفرماید مزاره مج... جائز از تأکیدش زمانی که مسبوق باشد به این مسبوق به چی باشد این بله مسبوق به ان باشد ولی چی اینی اینی که مدغمت... المدغمتی فیما اینی که مدغم در ما باشد مثلا ان ما میشه اما ام این قاعده عربی هست نون ساکن بعدش مین بیاد چی میشود ادغام میشه ان ما میشود اما ام اما از ان و ما تشکیل شده خب میفرماید مزارد جایز از تأکیدش زمانی که مسبوغ باشد به اینی که مدغم هست در ما به اینی که مدغم هست در چه؟ مدغوم شده مانند مثال اما نه تتعلم اینجا ما میتونیم بگیم اما نه تتعلم و میتونیم بگویم اما توصافر تتعلم همانطور که خود کتاب هر دو حالت رو آورده است یا, یا چه چی چیزی دیگه از اون سبقت گرفته باشد؟ یا این از اون سوغت گرفته باشد در این حالت ادغام در این حالت تأکید جائز است او یا بیعدات طلب یا عدات طلب قبل از اون آمده باشد یعنی اگر قبل از فعل مزاره این ما اومده بود مانند اما ما تو نتتعلم یا عدات طلب اومده بود یا چی؟ در این حالت ادغام جایجی تاکید جایزیست در این حالت تاکید با نون چی است خب برای همشون مثال آورده است طلب میدونید شامل چی و چی میشه یا نمیدونید طلب شامل امر میشه نهی میشه استفهام میشه عرض میشه تحدید میشه تمنا میشه اینا رو در هر کتاب نحوی بعدن میاره مخصوصاً در قسمت جزم مزاره اینا کاربورد دارند در قسمت در قسمت نصب اینا چی دارند کاربورد دارند طلب طلب اصلا یاد بگیرید دیگه خب طلب شامل چی میشه طلب یعنی طلب کردن همش به معنی امر نیست موقعی که شما یکی رو میگی آقا غذا رو نخور این هم یک جزد طلب هست متوجه میشید؟ خب بریم جلوتر سه تا مثال آورده لتر ترحمن المسکین اینجا این این باز هم تأکید جایز است چرا؟ چون قبل از فعل مزارک ترحم باشد چی اومده است؟ عدات طلب این لام لام امر هست بچه این لام لام چه لام امر هست خب؟ بعدن حل تصافرنه هل تصافرنه تصافرن في الصيف اینجا هم تاکیب چه چرا؟ بایل جائزی هست به خاطر که قبل از فیلم زاره استفهام یا همون طلب آمده است پس اینجا فعل مزاره مسبوق به عدات طلب هست لا تکفرن نفل جدال همچنین زیرا که قبل از فعل مزاره چه آمده است لای نه اومده است و از عدات طلب هست اما در امثله بعدی ولی بیایید آیده سی رو بخونیم بعدا بریم روی امثله المضارع یمتنع توکیدو فی حالتین مزارع ممتنع هست ممنوع هست تأکیدش در دو حالت فی حالتین یعنی در چند حالت؟ در دو حالت والله سوهل اینجای یا جایی دیگر اینجایی یا حالت اصلی جای اصلی خب مزاره ممنوع از تأکیدش در دو حالت اولا اذا کان جوابن قسمن اولی زمانی که جواب قسم باشد این فعل مزاره جواب چی باشد؟ قسم باشد ولی خب اون شرایط قبلی رو نداشته باشد چون اگر اون شرایط قبلی رو میداشت اون موقع دیگه چی میشد؟ آره دیگه ولم یستوفه شروط و وجوب تأکید و شرایط وجوب تأکید کامل نباشند. اون شرایطی را که در قاعده سی و ذکر کردیم و گفتیم با این شرایط تأکید واجب است اگر اون شرایط نباشند دیگر مزاره تأکیدش چی می شود؟ ممتنع می شود. پس اگر در جواب قسم آمده بود و اون شرایط رو نداشت ببینید ذهنها رو خوب بشوید گاهی موقر این شرایطی رو که ذکر کردیم ندارد ولی تأکیدی هم نیست نه، الى سراوان اینجا در جواب قسم نیست اینجا اگر اصلا اون شرایط رو نداشته باشد ها ممتنع نمیشه چرا؟ چون زمانی ممتنع میشه در جواب قسم اومده باشد و اون شرایط رو نداشته باشد بفهمیدید زمانی فعل مزاره از تأکید می میشود که در جواب قسم آمده باشد ولی اون شرایطی که ذکر شد یعنی یک در جواب قسم اومده بود مثبت می بود. مستقبل می بود بین مزاره و لام تأکید فاصله نمی اومده بود اون شرایط اگر نداشته باشد و در جواب قسم آمده باشد دیگه از تأکید نجائز نیست بلکه ممتنه هست خب الثانیه دو حالت دومی که تأکید ممتنه هست اذا لم یسبق اذا لم یسبق یسبق مال شما؟ اذا لم یسبق يسبق هست يسبق هست اما یسبق درست هست بما یجعل توکیده جائزا میگه حالت دفم زمانیست که قبل از فعل مزاره نیومده بود؟ آنچه که تأکیدش را جایزی قرار میداد. گفتیم یک سری مسائلی هستند که اگر قبل از فعل مزاره بیاند فل مزار تاکیدش چ میشه؟ جایزی میشه. میگه اگر اون مسائل نیومده بودند اگر اون مسائل نیومده بودند اونا چی بودند؟ بله شماره سی پنجم یعنی مدغم نبود به این مسبوخ نشوده بود به اینی که مدغم در ما هست یا عدات طلاق قبلش نیومده بودند در این حالت هم تأکیدش ممتنع هست تأکیدش چه هست؟ خب پس ما خوندیم ببینید این سه حالت دارد فعل مزاره فعل تأکیدش سه حالت دارد یا واجب هست شرایطش در شماره سی و چار ذکر شدند یا جائز هست در شماره سی و پنج یا ممتنع هست و این ممتنع دو حالت داره یک زمانی که در جواب قسم باشد و اولی اون شرایطی که ذکر شد رو نداشته باشد دوم زمانی که اون چیزهایی که ما ذکر شدند که قبل از فعل مزار می اومدن تا تأکید جوازی می بود اولا نیومده باشد دیگه اون موقع چی میشه ممتنع میشه اما شماره ۳۷. این در صورت خیلی گوش بکشید تا خوب در عمق مغزتان جای گیرد فعل امری یجوز و تأکید فعل امر بچه ها چه هست جائز هست. تأکید فعل امر هست؟ خب دقت بفرمایید در گروه جیم امثله گروه جیم صاعدا الفقراء تأکید هست دیگه اه؟ اما صاعد الفقراء. جایز هست که بگیم چی؟ چون تأکید فعل امر جایزی است، واجبی نیست. مثلا وحقك لا اخ الوطن اگر ما جمله رو تکون ندهیم تغییر ندهیم نمیشه نون تحکید رو حصف کرد تو نونجا چه هست؟ اونجا واجر هست ولی در ساعدن الفقراء این تحکید واجب نیست میشه نون تاکید رو چکار کرد؟ برش داشت شه گفت ساعدن الفقراء؟ ساعد الفقراء اقتصدن فن نفقات اقتصد فن نفقات این درس تحکید فعل بود؟ چند حالت داشت سه, سه حالت داشت